این نگه ای سخن معروف شمس تبریزی داره میگه که آنهایی که میگویند دل قطعه گوشتی خونالود و پمپاش کننده بیش نیست اینها کافرن و کفرستن همین در ما ببینیم این جماعت اهل دل در این حال درسته جل لاوبالیگری فساد خودکشی تختیر وظیفه نشناسی از و مرژ به آن آرشیز بدید نیورده و ای در این ها ما میدونیم که همین افراد اون من اکثره هم شرقشون اکثر به خودشون میرسه شرقشون خیلی کمتره نسبت به کسانی که هنوز ماتریلیست های ذهنگرای تکنولوژیکی فنی سیاسی هستن اونها آدم خورن مردم خورن این ها حد دقیق خود خورن شرقشون به خودشون میرسه این رو بدونیم ما فقط خود اون خود براندازی هم بران داره حقیست کل تقوی هم داره خود براندازی اون خود براندازی جبریست توفیق جبریست اجباریست که پدید اومد خود براندازی کور تقوای کور تقوای جاهلانه تقوای عامه تقوای عمی ببینید دل که میگیم ببین دیگه همه قلبه دیگه خود قرآن میگه قلب چی؟ ما میدونیم دانش پزشکی خیلی سعی کرد بر اساس فلسفه قرنه اجیده و اون علت مرگ و زندگی رو مرگز قرار بده مثلا همه میدونن یعنی مرگ رو تبدیل به مرگ مغزی بکنه و این نتونست الاز قوانین هم به بومبست رسید مجموع شد مرگ رو همچنان قرب قرار بده قلب وقتی از خالواستاد مرگ قلبی یعنی اون مرگ واقعی است این رو ما میدونیم. این واقعیت داره. خب واقعیت اینه که منظورم اینه که من به کار قلبه دیگه. درسته؟ پس حیات زندگی انرژی حیاتی از قلب. ما رو احساس هم می‌کنیم. تا احساس می‌کنیم. هر احساس می‌کنه در اینجا زندگی رو هر در اینجا احساس میکنه. زندگی رو لا اینجا احساس نمی‌کنه. اون حیات رو در اینجا آدم احساس می‌کنه، در قلبش احساس میکنه خب حیات از یه لاز، این غریزه ها. دو تا غریزه اصلی، غریزه تغذیه و غریزه جنسی، شکن وذیر شکن. حیات انسان بر روی زمین ملوط به این دو تا غریزه است. اینکه که بازه خوردن اگه نباشه انسان میمیره غریزه جنسی اگه نباشه حیات طولی انسان در تاریخ قطع میشه. این وازه بقای آنی است، آن وازه بقای تاریخی است، جنسی. این حیات فرگیست، اون حیات تاریخیست استمرار در زمانه، قرازی جنسی و این از قلب خب از قلب باشه، کجا داره باشه از منشه زندگیست، دو قریزه حیات اینا، قراز حیاتی هستن قراز حیوانی هستن، حیوان یعنی حی، صاحب حیات، حیوان که میگیم ما یک معنای پس رو فقط تلایی نکنیم به زن حیوان یعنی زنده، دارای زنده، زندگی، انسان یک حیوان بنابراین این دلگرایی های کورکوران جدیدی که از حاصل افراط در اون تفرید ماتریالیست و زهنگرایی مرد و ایدالیسم و انتلیکچوالیزم و دانشگرایی بوده خواهی این افراد حاصل اون تفریده دلگرایی انجام میده این تفرید بر حقه بر حقه یعنی بر دینه روسته ببین قرآن بگه که از دین و لباقه یعنی دین هر آن واقع است بر کافر مومن واقع است همه در دین هم. هیچکس در دین نمیتونه باشه کل عالمستی در دین است کل عالمستی اصلا دین است دین نیراه کل عالمستی راه خداست این واقع است من مومن باشم سو کافر باشم هیچ فرک نمیکنه قوانی این حاکم بر نفوس بشری تماما دین است بعد عده روب جهنم به رو روبه رو جهنم یک واقعی در دینه یکی از وادرسای دینه این راه در واقع میشه گفت انگار دو طرف هست انگار دو خط داره یکی بهشتیست یکی جهنمیست هر رو تا به خدا میرسن بهشتی ها جهنمی همه در حضور با خدا میرسن در حضور خدا حاضر میشن نایتن به هم میرسن خب بنابراین اگر چنینه وقتی ما می‌بینیم اون اهل دل و اهل که این روزه. وقتی عمل چنین آدم هایی چیه؟ میبینیم اهل حاله یعنی فقط غریز پرسته و هرگز در پاستو خوی به قرائز حیاتی خودش لحظه هی هم تعمل و تفکر و اقلانیت رو به خرج نمیده ما هفص می بخورم می خورم هفص می داشته باشم سکس دارم هفص می بخوابم می بازی کنم بازی کنم اینا قرائز حیاتی است ببین، بازی و بازیگری هم جوزه قرائز حیاتی باشد بازیگری هم حیاتی ق بدون تفکر و تعقل و بدون هماهنگی با خرد من این کار را فیلبدایی انجام میدم. اصالت هنرم در همینه. هنرهای مدرن تمام هنرهای فیلبدایي هستند بدای سازی هستند، ادبیات مدل ادبیات بدای نگاریست. نگاریش خود به خودی که که مکتب خودش هر عنوان داداизмی مرحلهی تر شد یا سرالیزم ها، ها. نوشتن. بدای سازی، بدای پردازی، نقاشیها، آبستره نقاشی، ابستره، آ؟ پردازی است. ایتاج یک ایده داشته باشیم یک تحریروی تبلیغی. آ رنگ وای می‌دهیم، همچنین می‌دانیم چی می‌شود؟ توش این ابستر است. اگه دقت کنید کنیم نیستیم از اتحاد همه موزه‌ها سازی و بدای پردازی است. شما نیرو جنگ‌های این جدید هرگز جنگ‌های استرژیجی نبوده. قربیا سایکادا است روی ولی تمام این جنگ‌ها خدمت اون فل بلهی دست دست گرفتن یکی دیوانه شد و یه جایی از دنیا رو با آتش کشید ببینید رو ما داریم تازه این سیاستمداران اوغلا هستن هنوز در ذهن عمل می‌کنند ولی گام به دارن به این سمت به قول اهل حال شدن انجام دن برای همینه شما مطمئن نیست که فردا هست یه آقای بوش یه میشه تمام ببین بی هیچ زمینهی مقدمهی اصلا مقدمه, مقدمه بهتر نیست قیامت همین یعنی همینه این از بیژگی ها این از بی قیامته قیامت در قرار اصلاه هر آن یعنی بقتن بناگاه انسان هم امروزه بناگاهی شده انسان قیامتی، انسان بناگاهی یعنی اهل حال و دل ببین اینها حقیقت واقع است این حقیقت باید درک بشه انسان ببین ما اگه در آخر آخرالزمانیم در قلم روی قیامت 50000 ساله هستیم پس در قلم روی حال و اساء هستیم الان شما دست میگی میگوی انجام بدم و انجام میدم اینا نیاله ها اشکال کار در عدم معرفت نسبت به این واقعی است که جبران در نفس بشر رخ داده قیامت در اعماق ذات رخ داده همینطوری که در طبیعت هم رخ داده ما در بحث آخر نمیصو بحثا را که از دیگه اینجا تکرار نمی کنیم. پس تاریخ علا رقم اراده و آگاهی انسان داره راه حق رو می کنه برای داره به سمت خدا میره. مرحله اینا لله اینا اله راجعونه اینا اله راجعون به رو بر خدا یعنی اقنونیت مه یعنی حضور مطلق برای در معارف اسلامی میکیم خدا در قرآن هستید. خدا کردن که جواب خالقونه نشه چک کنه هزاران هزار صاحب هزار برنامه‌ریزی کنه سناریو بنویسه. میگه بنیم نظری خلق کردم، تصمیم گرفتم کن فیا کن. یعنی به راه کردم و هم جایراده کردم، همونجا واقع همون شد، حتی این نیم ثانیه هم پیل بعدش بعد نذاری. اکمیه همین. ها؟postcssه بشه این خدا ارادهش اینو انسان به میزانی که جبران داره در قدم روی قیامت به خدا نزدیک میشه، انسان هم این کارها ازو اون فایه‌ایه که یعقوب میاد منتهیاً جاهلانانه و کافرانه و مخلوقانه البته این رو هم باستی ما در کلیم که این یعنی چی باستی فهمیده میشه باستی به این ما یه نکته دیگه در قرآن داریم در قرآن آیه‌ای هست که می‌فرماد خداوند خائل است بین قلب و مرء قلب یعنی باطن مر یعنی آدم مرء آدم بیرون ظاهر خب قلب مشخص مرد جهان مرعیات در اینجا ما همه چیز رو در ذهن خودمون مرئی میکنیم جهان اینیات نامرعیات قلبه درست خداوند حائل است بین اینجا و اینجا الله که نفسی این آیه تربیلش این میشه آیه دیگه داریم از سوره حوده بکنم که حود فرمود پروردگارم بر صراحاتم مستقیم است و در اونجا در انتظار من است این از صراط مستقیم صراط مستقیم لازمه معرفت نفس یعنی فاصله دیگه کوتا فاصله بین خود تا خدا خود ما در بحث قبلی گفتیم هوشیاری انسان آگاهیشه و ذهنیت خدا دل خانه خداست از کوتا ترین راه بین خود تا خدا همین یه وجب ذهن این صراط مستقیم کوتا فاصله بین خود تا خود این راه همون دینه دین به معنای راه و خدا در این فاصله در انتظار انسان است بر صلاح بنابراین اشکال این قضیه در اینه که انسان بایستی قلب خودش رو به معرفت در بیاره صدق این تصدیق زین و دل تصدیق اقل عشق اتحاد اقل و عشق اتحاد زین و دل این به واسطه معرفت روخ میده برای همینه از امصادیر داریم، از ممالک دیگری صریح داریم که صراحتاً مستقیم همون معرفت نفس است خودشناسی است. می‌بینی صراحتاً خود خود مستقیم همون خودشناسی است. خودت خود مشخص می‌شود. صراحتاً مستقیم همون خودشناسی است. اصحاب اعراف امام صادقیم فرماد که ما امامانیم. یعنی اعرافان امامان همون اعرافان بودن و نخودشین اعرافان میخوام بگم. یعنی اعرافان بودند. اعراف یعنی معرفت نفس. ها؟ از اهل معرفت اصحاب اعراف سالتان مستقیمی داره که باستی بر مسیر که کنه این سالتان مستقیم باید بهش تو و جهنم اشتاف داره طبق کلام خدا اهل معرفت به و جهنم رو کاملا میبینه زیر پای خودش داره سمت چپ و راست خودش و از این وسط میگذاره کل سرات همینه آرفان چنینن و یک مومن مسلمان باستی اهل معرفت باشه از این طریق مردمان را بده تا قدم روی حضور قلبی و رسیدن به راه رسیدن به دل رو به مردم نشان بده و اعمال و عمل کردش رو نشان بده که چگونه این سانه بایستی بر قدم روی دل وارد بشن در حضور خدا دیوانه نشند ما یک بار دیگر آزدن گفتیم عمل و آین رسیدن از خود به خدا همون شریعت انبیاست اصول عملی دینی راستگویی قناعت پرهیز از محرمات اینها اصول عملی دین است اینگونه است که من به دل میرسم بدونه که در قدم روی دل دیوانه و کوروکر بشم بله انسانی که به دل میخواد برسه یا یعنی به محضر خدا و راستانی هر میخواد برسه باعثی در خوشیاری کامل باشه در بیداری کامل باشه یعنی معرفت پیغمسی انسان اگه بخواد آفتاب رو هم نگاه کنه چند از نگاه کنه کور میشه دیگه درسته خب آفتاب دل خورشید حقیقت در قلب انسان انسان واقعی آنچنان چشمش قوی شده باشه خوشش قوی و قدرت شده باشه واسه معرفت نرس، تا در اونجا کور نشه تا در اونجا دیوانه نشه این مسئله است برای همین این جماعت اهل دل و اهل هنر جبرن اینها مبتلا میشن به انواع مخدرات الکل ها گردان ها خود همین بزرگترین آفت و آرزه این قلم رو به به جایی که برای مرفضی افساین مواد مخدر هوش حواست خودشون رو کریخ می و میکشند. و لذا در اون قلم رو دیوانه میشن به خودکشی و خودبراندازی می خود بایستی در ذات خدا حل بشه و تسلیم رادی خدا بشه به واسطه معرفت میتونه در غیر انسان مجبور به خودکشی ها و خودبرندازی هاست که یکی از رایشترین این خودکشی ها و خودبرندازی ها انواع مواد مخدر و محرک و روانگردان ها هستند انسان امروز یا اهل معرفت یا علی تختیره با معرفت نباشه مجبور به تختیر گرایش پیدا کنه راهی جزی نداره پس تا اینجا یک نتیجگیری کلی شد حالا با شما میتونید چند بای دیگر یک مسئله رو مسئله سوالی داریم. من فقط میخوام به در به طرز دیگه این مسئله که شما گفتین توضیح بدم. خب پس میشه اینطور گفت که در کل تاریخ بعد از اینکه انبیا ظهور کردند در برهای از تاریخ بشر بر اساس شریعت اونها زندگی کرد ولی پیروی از شریعت به تنهایی نتونست بشر رو صادق کنه خب شما چون مدام تکرار می شریعت رو و پیردی از احکام روح ما این رو در تاریخ تجربه کرده بودیم <تصفيق> پس به بومبستی رسیدیم که دست از اون شریعت برداشتیم پس کفایت نکرد حداقل در هر موجی هر کدوم از انبیا در هر قوم خودش تا سالها مردم شریعت رو به دقت رایت کرد ولی پیروی از این شریعت حاصلش نفاقی بسیار میشه گفت تراژیک شد که همطور که گفتین هر کدوم از انبیا در مذهبی که داشت قرون بستای خودش رو کرد که قرون بستا همون اشد نفاقی بود که بر پیروانش حاکم شد بله. پس پیروی از شریعت کفایت نکرد و بعد و این نفاق و این قرون و شر بونجاکشون که دست از انبیا و شریعت اون برداره و هر کسی خودش به حواس خودش اتکا بکنه و بگه آقا من خودم برای خودم کافی هستم و عقل من همون حواس منه و ماترالیزم میشه شود خب ماترالیزم و در واقع خردگرایی میشه یا ذهنگرایی که دیگه ما این رو در حده برونه 18 که دیگه اوج فلاسه هست <تصفيق> که میشه گفت امثالی مثل هگل که دیگه در وقت میگفت این پیک خردگرایی رو که نهایتا به همون دیالکتیک رسید بیان کردن تجربه ماترالیزم باز و تجربه چنین ذهنگرایی و خردگرایی به تنهایی باز هم بشن رو به گمبست کشون و اون دید که پرداختن به مادیت و تنها خود رو ذهن دونستن کفاف احساسات روان و روح اون رو نمیکنه و در درون خودش دچار پوچی ها شد از اینجا بود که فرد چون نیچه مثلا ما امتونیم بگیم در واقع چون چنین خردگراری در خودش به اوج رسوند پیامبر نیهیلیزم امروز ما شد این هست. بعد از اینکه نیچه این نیهیلیزم رو اعلام کرد و این پوچی رو به بیان کشوند خب پیپیگری ها و در واقع میشه گفت که از یه بابتی همه هی پی نیچن نیچه به خاطر اینکه نیچه این رو اه، آه، یعنی شروع کرد یعنی بعد از این این خردگرایی و ذهنگرایی رو در خودش به قایت رسوند سرنوشتی هم که خودش بهش مبتلا شد خودش ثابت کننده این بود که آقا جون دست از این ذهنگرایی بردارید و نهایتا اینشون دست سال آخرانشو در سکوت کذارد و یعنی خودش با تمامیت خودش به بومبستست و پوچ شد برای همین آنچه که در زندگی اون به دیگران بیان شد و نشون داده شد این که آقا جون به به دل ما. و اینکه خودش هم ظاهرا در زندگی عملی خودش قدیس بود ولی در بیان خودش کافر بود در واقع با تمامیت و آنچه که داشت به بنبسط رسید از سوی از شریعت انبیا رهایی نداشت به واسطه تربیتش و به فطرت خودش و واسوی دیگه احساس میکرد که تمام مشکلات از است بر همین تمامی کتابش فهاش به حضرت مسیح ول خوب در هرصورت یک انسان به کمال این خردگرایی در خودش رسید و نهایتا سکوت کرد موجه بعد از نیچه میشه گفت نیچه واقعا پیامبر نسل امروز ماست نسل امروز ما حاصل چنین بنبستی است که نیچه در خودش تهی کرد و جوانهای ما تصمیم گرفتند که دست از خردگرایی بردارن از ذهنیت بردارن و به سمت دلشون برند همطور که گفتیم وقتی سخن دل میکنیم ما نفس رو وقتی ما میگیم نفس یعنی خود انسان نفس یعنی منیت انسان و من انسان این نفس در هر بشری در دو جایگاه واضحی میشه یک ذهن نفسه یک دوبام دل نفسه نفس آگاه و نفس ناخودآگاه. آگا. زمیر آگاه و زمیر ناخدام بله همطور که فروید کن بله پس وقتی ما میگیم دل من از دل نفسم صحبت میکنم یعنی نفس من یک موتور محرکه برای حیات داره که از دلش آبش خوره در تقضیه میکنه و ذهن من هم سعی میکنه این نفس من رو با آنچه که در بیرون هست منطبق بکنه و بتونه راهها رو به من بده راههای زیست در این دنیا رو ذهن من به من نشونده خب همطوری گفتیم، طول تاریخ پیروی از شریعت نهایتاً ماتریالیسم و بعد حالا پیروی از دل به وجود آوردن نسلی شد که اهل حال شدند اهل عشق شدند و به کلی منکر ذهنیت شدند خب حالا من البته اینها تایید سخنان شماست من با بیان دیگه ای دارم همون صحبت رو مطرح میکنم. پیروی از ذهن با انکار دل انسان رو به بومبست کشوند پیروی از دل هم با یعنی آنچه که الان هست با انکار ذهن باز هم بشر رو به بومبست ما الان با نسلی مواجه هستیم که تباهی و سقوط و فسادش عمری مسجل و است. یعنی این نسل است که خود به خود برندازی رسیده این خودکشی های جمعی هم نشونده اینه که آنچه که باز هم در واقع میشه گفت پی از اونا مختن که آقا فقط دنبال دل باشیم هم داره به خودکشی میرسه و جوانهای ما همه نشانگره این هستن حالا این خودکشی با استفاده از مواد مخدر فرق نمیکنه که اساسش همین مواد مخدر رو نشجات خود. پس نه دنبال روی از دل و نه دنبال روی از ذهن هیچ کدوم صدق نیست هیچ کدوم نیست هیچ که به تنهایی صدا. صداقت نه این هست که من دل رو منکر بشم و فقط ذهن خودم رو پروار کنم و اون رو خدای خودم بکنم پیروی از دل هم کفایت نکرده و انسان رو به صداقت نرسونده ما با دو موج از خود بیگانه گیری روبرو شدیم گروهی که فقط بر اساس ذهنشون زندگی می کنند یک از خود بیگانه در برتهی دیگر هستند و اونهایی که از آن بر اساس دلشون دارند زندگی می کنند آنها هم مجنون هایی هستند که کاملا از خود بیگانهیشون واضحه و همطور که میگید به خاطر چنین از خود بیگانهییه که مجبورن در تخدیرات خودشون رو گم کنند تا این همه دوری از خودشون رو نبینند رو آها، پس پیروی از دل و پیروی از ذهن در تاریخ امروز و در تاریخ بشر تجربه شده شما از حقانیت وضعیت بشر امروز صحبت کردید همطور که گفتید بله بشر باید هر کدوم از این راه ها رو تجربه می کرد. هم دلش رو منکر می و فقط بر ذهنش زندگی می کرد. هم ذهنش رو منکر می شد و بر دلش زندگی می کرد. و ما الان در آخر و زمان هر دو تجربه رو در پیش روی داریم هم بشری رو که کاملا ماده پرست شد هم بشری رو که ظاهرا تنها معنا شده اه. و اهل هنر و اهل عشق فقط بر معنا دارن زندگی میکنن از باب تصورات بود ولی هیچ کدوم از اینها انسان رو با خودش آشنا نکرد و روز به روز بیگانگی پیش برد. پس انسان چیست؟ وقتی ما میگیم انسان چیست یعنی راستی چیست؟ یعنی چطور انسان میتونه صادق باشه؟ به نظر میاد که انسان نه ذهنشه نه دلشه دل. چون هیچ کنوم از اینها نبود دیگه پس انسان چیزی در ورای این دوتاست یا چیزی در ما بین این, ما بین این دوتا خداوند بین دل و ذهن گفتیم حائله یعنی جایی بین این دو اگر میگیم خداوند خود انسانه خود حقیقته راستی راستیست بس دباقه میشه گفت در جای بین این دو یا برای این دو یا محل طلاقی و اتحاد این دو پس ما در تجربه تاریخیمون و در وضعیتی که آخر زمان هست یعنی هر آن انتظار داریم که خدا رو به عینه رویت بکنیم چون چنین تجربهی رو داشتیم به چنین وضعیتی رسیدیم یعنی بشر دیگه نه ذهن خودش رو صداقت میدونه نه دل خودش رو صداقت میدونه این ناکامی بشر. اون رو به جایی رسونده که باید دست به راه سومی برای خودش بزنه همون خط سوم راه سوم این راه سوم چیست راهی که میانه ذهن و دلی بله؟, بله شریعت به تنهایی کفایت کننده نشد اما چه چیزی میتونه این شریعت رو باعث بشه که پیروی از شریعت انسان رو به اون راه سوم برسونه در اصل شریعت در همطور که گفتم در هر دورانی بشر از شریعت در حد توانش این رو پیروی کرد ولی نتونست پس پیروی از شریعت به تنهایی کفایت کننده نیست همطور که ما الان هم هنوز هم میتونیم اندک افرادی رو در هر مذهب و فرقی پیدا بکنیم که داره شریعت رو در هدی رعایت میکنه ولی وقتی به اون هم نگاه میکنیم میبینیم که اون هم یکی از خود بیگان است مم. مم. پس پیروی از شریعت نتونست انسان رو به اون خط سوم بین ذهن و دل بکشونه مم. من میتونم بگم پیروی از شریعت همراه با معرفت نفس میتونه این کار رو بکنه یعنی وقتی معرفت با شریعت همراه باشه در این صورت هست که انسان میتونه راه سوم رو که بین ذهن و دلش هست <تصفح> که همون جایگاه صداقت، همون جایگاه خداست همون انسانیته برای خودش پیدا بکنه من این رو میگم بیان دیگه بود از های شما حالا خودتون خود تو ما سوزیده ایت بفهمید مچنگی ممنون سیار زیبایی بود و نهایتا ما میتونیم بیدیم صدق نیست صدق با خوشتان این چی؟ یعنی من ذهن و دلم رو هر دوتا رو تصدیخ کنم و شاهدی بر هر دو باشم اون راه سوم ش... اون شاهده اون شهادته شهادت لنی معرفت با خشتن. ببین؟ در واقع آن کسی که بین این دو استاده در انتظار است که خود پروردگاره است. در این نال این خود پروردگار همون خود خود انسان است بقول علی یک خود خود انسان همون خود, خود است این انسان آرف در واقع خلیفه خدا در جهان خاکی. این خلیفه همون راه سبومه بله این خلافت همون راه سبومه در از حال بعد انسان شاهد انسان آرفه برخشتن ها در واقع منظر پروردگار بر صرفتر مستقیمه و جایگاه او در جهان هستی است صدق صدقه بوخشتای اینه که هم ذهن و هم دل رو ما درک کنیم به افراط تفریط نگراییم یک مرحله فقط ذهن پرست، فرمول پرست، منطق پرست و ماده پرست و حسابگر محض باشیم یا یک دفعه در اونجا به ناخامی رسیدیم اونو ترد کنیم، باطل کنیم و یک دفعه یک احساسگرای کور و دیوانه و دیوانه بشیم. یک احساسگرا و عاطفه پرست کور و دیوانه بشیم. ببینید اینکه شما فهم که اهلی هنر تماما دیگه به افرادگرایی معنا پرستی رسیدن؟ این یک شعار دوگیره با آقای هنر هنر مبینید تا چدیت واقعا پول پرستند؟ این به شیره بسیار موزیانه خودفروشی در قلم روی هنر خیلی واضحه چرا اکثریت اینها به تباهی و به فساد و فحشا کشیده بمیشن؟ ها؟ ببینید پس برای پولی که خود فروشی میکنه. بله یک جنونه، یک دروغه. دروغه، یک خودخریبیه. کاملا یک فریبیه بله چون صادر نیستن دیگه. برای که نیستن با خودشون. پس سر دنیاست که با و این هر دو رو ذهن و دل رو تو امن دیدن و در بین این دو آن حقیقت واحده رو ها یافتن و که اون حقیقت واحده همون اتحاد ذهن و دل. این هم اتحاد دین و دنیاست. این هم اتحاد ما دومن است. این یگانه است. پس توحید این صدقه و صدق همون توحیده و بایان دیگر عقل ما در دین اسلام در هیچ دینی دین اسلام عقل اینقدر تایید نشد عقل از ویژیکی مومنان سخنی از دست رو که عقل همون وحی تن است در دوران ختم نبوت ها عقل خلیفه وحی است انسان عاقل خواه به دین و به شریعت میرسه نمیتونه که نرسه انسان یک تعقل داره میبینه که در راه و روش های در زندگی میرسه اینکه ای همون راه و روش های بوده که پیان گفتن انسان آقل میبینه که دروقوی زرنگی نیست خود رو بهدارکت و رسوایی و پوچی و زرج انداختنه آه؟ پس در واقع انسان آقل به تصدیق حقانیت سلق میرسه یعنی معرفت این کار میکنه ولی معرفت این کار رو میکنه معرفت این که در... هزته تصویف هم که زیم پرز رهوان معرفت نفس هستن که به حقانیت و حقایق حق دین من میرسند یعنی به شدیت من میرسند دیگه ببینی؟ پرز انسانی علم معرفت به دین میرسه به راه دینی های دین میرسه و صدق رو تصدیق میکنه دل ببینید گفتیم مساله کانون حیاته که قراریز مسئله اونجاست حی از اسمای خداست یعنی زنده پس اوست که در دلی. قیوم هم همونه در اینجا حی و قیوم که از اسمای ذات پر بردگاره ما بگیم اینجا حی اینجا هم قیوم قیوم حیاته رسته؟ قیوم حیاته قیمومیت میکنه آه، بله. بله حی و قیوم اینجا حی و اینجا قیومه ببین پس حیات زندگی خود خداست زندگی مطلق و جواب خود خداست قیوم خود خودست انسان که میخوان این قیوم رو نابود کنن به یک حیات دکور میرسن اونهای که میخوان حیات رو انکار کنن فقط به یک منطقه خشک و بیروی میرسن و از زندگی ساقت میشن و این افرادتفری اندهان نداره. خب ببینید پس برگردیم به آغاز سخن صدق در کردار گفتار و اعمال و صدق در احساس این صد احساس من وقتی عواطفم معتوک به مثلا کسی یا یه چیزی میشه که کاملا میدونم که آن چیز لایق دوست داشتن نیست پس من دارای عاطفهی کذابم ها من کسی که واقعا لایق دوست داشتنه رو دوست ندارم ها اگه جای مفسده و حتی دشمن منه اون رو به مبتلا میشم این ابتلای این اسمش خوب نیست ببین این باز عاطفه دروغینه ببین گفتم شریعت ما با این رو بدونیم نماز خوندن روزه و صدقه و حج اینا شریعت نیست نا فروی دین عباداته عبادات. یعنی فرو فرو یعنی میوه در عربی هم فرو یعنی میوه محصول معلول اینها معلول طبیعی آن چیزی که میگیم احکام شریعت و احکام عملی دین ببین نگیم ما شریعت رو انجام دادیم نشد نخیر شریعت صدقه دوری از حرام دوری از ربا ربا در خود لغتش یعنی زیاد خواهی فوزونی خواهی یعنی هرس یکی از اشکال ربا نزول خاریه هزاران شکل دیگه هم داره چه بسید ظاهر ما نزول نباشیم به شکل بیشی رباخاری داریم میکنیم حس دنیا پرستی شریعت اینها هست صبر، از خود گذشتگی قناعت نفس تهمت نزدن تهمت ناحق نزدن به ناحق جدال نکردن جدال باحق نکردن زنا نکردن خیانت نکردن به عهد خود وفا کردن شریعت اینه پس نگی ما شریعت رو کردیم نشد. این دروغه. ما شریعت رو نکردیم و فقط خواستیم نمایشی از فروع دین داشته باشیم، و نشون بدیم که ببینید، نماز ما رو نگاه کنید، نگاه کنید چقدر خیرات میدیم. از همین جا شما بفهمید ما چه های صادق و پاکی هستیم. خب این نفاق ایجاد میکنه نفاقی که همه رو جبران کافر کرده. و این بر حق نفاق عذاباباره. انسان یه روزی میتونه منافق باشه، بعد مجبور علنا ظاهر باشن کافر شه. برای اینکه عذاب خودش رو بکاهه این نکته بی نهایت مهمه بی نهایت مهمه من اگر یک انسان حریزی هستم در دل خودم فقط دنیا فرستی میخوام فقط در فکر رباه و زنا و عیاشی خودم هستم و من میتونم در راتبادگران راستگو باشم بیریا باشم نه نمیتوانم باشم در راتبادگران چی هستم؟ فقط چاپلوس دیاکار هستم فقط عشق نمایی و دین نمایی میکنم فقط یعنی دین من ریایی میشه شریعت من ریایی میشه و این منو و حلاق میکنه مجبور بزنم زیرش در برم آمریکا دنباده یه خودم ببینید این یوریه پس پندار نیک یعنی پندار ای که بر اساس حلال و حرام تبیین میشه به میزانی که من اندیشه خودم رو تطبیق میدم افکار و آلوزی ها خودم رو تطبیق میدم بر احکام دین خدا دیگه مدیبونیستم ریاه ریاکاری کنم در رفتار هم میتونم صادق باشم در گفتار هم میتونم راستگو باشم در غیرستر راستگویی ناممکنه امکان نداره فقط چاپلوسی و جانماز آب و مخلصم چاکرمه که وجود داره و دروغ های پیچیده تر hey, دروغ ها رو پیچیده تر و پیچیده تر کنم که لو نره بله، اینقدر خودم هم بزنم در بکنم که در دروغم فکر میکنم که از من صادقتر مگه در دنیا هست از من مومنتر مگه کسی هست مگه اصلا اینطور نیست ببینید مومن حقیقی انسان به میزانی که مؤمنه در خودش کفر رو میبینه مومن حقیقی خودش رو میدونه در خودش دعای علمی ما نگاه کنید همش از کفر و زلالت خودشون در حضور خدا دارن صحبت میکنند اینا اصفه ایمامند اصفه ایمانند امام ایمانن. انسان به میزانی که معرفت داره جهل خودش رو می‌بینه، و خودش رو جاهل می‌بینه. انسان به میزانی که صادقه، حتی نمی‌فهمه هنوز چقدر درش کذب و هست. اینا یادمون باشه. برای این از نشانه‌های مؤمن خشوعه، برای اینکه می‌بینه که تا خدا چقدر فاصله داره. چون صدق صادق خود خداست. پاک خود خداست، می‌بینه انسان به میزانی که صداش گله پاک باشه، می‌بینه که چقدر ناپاکی در دلش روز هست. و لذا متوازه میشه بنابراین انسان به میزانی که در زیر آقایی خودش خیر و شر رو تصدیق میکنه که آقا این خوب است این بد است این پاک است این ناپاک است این حلال است این حرام است در عمل سعی میکنه به سمت پاکی و خیر و نیکی حرکت کنه آه؟ نیکی خیر پاکی کیه خود خداست جاش کجاست؟ در دل. خب پس انسان به میزانی که بر این اساس باورهای خودش رو تدوین میکنه و قبول میکنه اندیشه خودش رو بر دین و بر این اکام تطبیق میده و در مسیر خیر و درستی حرکت میکنه یعنی در سمت دل در حرکت میکنه به دل میرسه چه انسانی میتونه بر دل وارد بشه و واقعا اهل دل و اهل حال و اهل محبت بشه ببینید پر اطاعت از دین دوری از محرمات روی کرده به خیر و نیکی روی کرده به دل و راه زن تا عملش عملی بر اساس دین عملیست بر اساس دین ما جدین نمیتونیم راست و با صادق باشیم یعنی خط ثوم همون عمل در دین خط سوم یا همون میانه بله همینه این خط ثوم های کذایی که درست کردن عرفان های بله. این یک شیطنت دوبلاست خط بله خطسوم همون دین است دین عمل نشده. عمل نشده دین عمل نشده دین اینه به میزانی که انسان بر حق بر احکام دین عمل میکنه رو به خیر میکنه رو به خانه خدا میکنه خانه خدا دله از این طریقه که به دل نزدیک و نزدیکتر میشه تقرب الاله یعن تقرب به دل که خدا خداست در وجود انسان پ راه سوم ببین باز ذهن یکه دل دو آه. راه سوم راه تیه طریق بین ذهن و دله چشکی انجام میشه عملش اندیشهش چیه اندیشهش باوره احکام دینه آه. و عمل به دین این راه را تیه میکنه با این, این بیان صادقان بله این خط ها خط ها یعنی جای سوم در وجود راه بین ذهن و دل, دل. دل. راه دی، ها باز انجام زندگی دینی همون خطه سبوم صفوم و راهی سبوم خانم از اینجا داره میاد بله انسان به میزان که دین عمل میکنه خود به خود لسان صادقانه پیدا میکنه خود به خود به میزان که به دل نزدیک میشه یعنی به خانه خودا نزدیک میشه اهل نماز میشه ببین تمام امر نماز در قرآن به مؤمنانه این مؤمنان اقامه صلات کنید الله ببین مؤمنان ایمان اینجاست به میزان که ای بر ایمان نزدیک میشه خود به خود سلات به طور طبیعی به این نیازی وجودی ازش بر میاد یه سخن از ابوذر غفاری داریم وقتی به پیامبر اسلام رسید در اولین بار فقط پیغمبر کارهای داره میکنه داشته به اقامه صلات میگازید بعد میگه ای محمد چی بود تو کردی گفت بیمیگن اقامه صداد بگیم نه کجا من میگه چطور میگه؟ بگیم من این اواخر یک سری کارهای از من سر می که خیلی شبیه کارش شما بود که اطرافیان من فکر می‌کردم من دیوانه شدم ببین بعد ابوذر قبل به پیان برسه سلاف از بگیم یک واقعی وجودی و طبیعی از انسان در میاد خیرال همینطور همه چیز همینطوره عبادات میوه طبیعی طریق دینه. عبادات بدون عمل دینی عبادات عبادات ریاهیست است و فویل زنجل در قرآن میشه خداوند در قرائ در سوره میگه من میخواهم مکذبین دین و دشمنان دین رو تکذیب کنندگان دین رو به شما عرفی کنم یکی از آنها نمازگذاران ریایی و صحبی هستند که از روی ریا و یا از روی سهو عادت از روی وراثت های خانوادگی نماز میخوانند اینا دشمنان دین و تکسی کنندگان دین هستند و والله چنین و وای برای چنین نمازگذارانی پس ما یاد اون من باشه منظورم از شرگت چیه بنابراین در مفهومن آیی میشه گفتش که انسان به میزانی که راه دین رو طی میکنه که راه خیر و احکام دینی هست از ذهن گام به گام به درک خانه خداست نزدیک میشه خدا گفتیم صادق خداست یعنی به قدم روی ست نردیک میشه سخنی صادقانه رفتاری صادقانه و محبتی صادقانه پیدا میکنه و به میزانی که این نمیکنه دوچار چاپلوسی دروغین اشخه های ریایی که همش فسقه اسم فسقش رو میذاره اهلی دل بودن و عشق پس انسان به میزانی که باز خودش رو میشناسه رو به خود میکنه اگر خدا در قلب انسانه و منشأ صدقه انسان به میزانی که خود میکنه خودشناسی میکنه، رو به صدق میکنه و در قدم رو به صدق قرار میگیره. پس معرفت نفس همون قدم رو به صدقه، صدق، صدق باخوشته. این همون واقعیتی است که اول گفتید. این همون واقعیتی است گفتیم بله، همون واقعیتی که ترغیب راه دین و پیروی از شریعت میتونه انسان رو واقعی کنه. برای اینکه بزرگترین واقعیت برای انسان خود وجود انسانی، یعنی رو به واقعیت خودکزرن، رو به واقعیت وجود خود کردن برای اینکه جهان بیرون و واقعیت بیرونی معلول حوش و انسانه. پس اصل واقعیت و کارخانه واقعیت خود وجود انسانه برای هرکس هر خود را نشناخت، هیچ رو نمیتونه بشناسه. و در همه چیز گمه. پس راه شناخت صادقانه هم راه معرفت نفسه. سخن صادقانه همینطور و عمل صادقانه معرفت نفسه برای اینکه واقعیتی واجبتر و نزدیکتر از خود وجود انسان برای انسان وجود نداره شناخت این واقعیت هم شناخت صادقانه است و قدم رو به صدق: به یعنی پیروی از احکام شریعت قاص میشه که انسان بتونه ذهن و دلش رو با عنوان دو واقعیت وجودی خودش تصدیق بکنه ام. و این تصدیق همون صداقت همون واقعیت همون دین. و همون رسیدن به انسانیت انسانه دقیقا همینطوره. ببینید پس دو خودسناسی یه دلشناسی داریم یک ایده شناسی داریم اه؟ این دو قلم اصلی خودشناسی، است ایده شناسی زهنه جهان ایدئولوژی ایدولوژی که میگیم یعنی ایده شناسی بدون باشه ایدولوژی محصول خداگاهی ذهنی انسانه نه محصول تدوین آرزوها و آرمان شرح. درست کردن این ها ایدولوجی نیستن ایدئولوژی یعنی حاصل خداگاهی انسان بر ذهنیت خودشه این معرفت ذهن این معرفت بر قلبه این تا معرفت قلم رو به صدقه وقتی این تا معرفت یک معرفت شدن یعنی وجود به یگانگی رسیده صدق یعنی یگانگی ظاهر و باطن یکی شدن که در پیروی از که در پیروی از شریعت عملی اتفاق میاد <تص>